Enter. Get that audio. صفحه 81 چهاق در آن روز جشن بزرگی برپا کرد و از همه دربارهیان بزرگان پذیرایی شایانه به عمل آورد و, و پزشک را در کنار خود نشانید و بهترین کدننی ها را به او داد و از او شخصا پذیرایی کرد همه کسانی که در این جشن حاضر بودند پی بردند که پزشک دوبان مورد توجه و احترام مخصوص پادشاه است شاهسود که به اینجا رسید آرام گرفت زیرا سپیده صبح رفته رفته نمایان میشد. در این هنگام صدای دینارزاد به گوش میرسید که می خواجه جان گرچه نتیجه و پایان این حکایت را نمیدانم، اما شروع حکایت بسیار حیرت انگیز به نظر میآید. شاهسود گفت اواخر حکایت و مخصوصا پایان آن به مراتب هیجان از آغاز آن است و چنان چه شهریار اجازه فرماید بقیه ای آن را بگویم مطمئناً با من هم عقیده خواهید بود که چه پایان جالبی دارد شهریار که بسیار راضی به نظر می رسید با ادامه داستان موافقت کرد شب 13 دینازاد برای آنکه شهریار از تدبیر او آگاه نشود ناگهان در عالم خواب و در بستر خود فریادی کشید و گفت خواجه جان من خواب وحشتناکی دیدم که بسیار ناراحتم کرده و تنها چیزی که به من آرامش دهد شنیدن باقی حکایت شاه یونانی تبار و پزشک دوبان است و از تو که این همه به من علاقه داری میخواهم آن را تعریف کنی و به بعد معكول نکنی. شهرزاد هم که از منظور دینارزاد آگاه بود گفت من هم میخواهم که هرچه زودتر ناراحتی تو برطرف شود و اگر شهریار اجازه فرمایند من ادامه خواهم داد شهریار شیفته شیفتهٔ طرز بیان و زیبایی سخنان شهرزاد بود به شهرزاد گفت تو آنچنان هی آور سخن می گویی که برای من راهی جز موافقت با ادامه بقیه داستان باقی نمیگذاری گذاری بنابراین بقیه حکایت را بگو شهر هم چنین ادامه داد مرد ماهیگیر برای قور گفت پادشاه در پزشک دوبان به این میزان سپاسگزاری اتفاق نکرد بلکه لباس زربفتی هم به او بخشید و روز بعد هم دستور داد هزار سکه طلا به او بدهند و پزشک دوبان با لباس زر در دربار حاضر شود و از ملازمان نزدیکانی ویژه شاه گردد. پادشاه هر روز هدیه تازه‌ای به این پزشک دانشمند و کاردان میبخشید و اجازه داده بود هر روز هم در حضور شاه باشد و در امور روزانه از نظریات او استفاده کند. خلاصه مطلب که هیچکس کس به اندازه این پزشک مورد توجه و محبت شاه نبود و او نزدیک‌ترین فرد نسبت به شاه به شمار میرفت. ا وزیری داشت که آدم بسیار خسیص و حسودی بود و انتظار نداشت کس دیگری طرف توجه پادشاه باشد در عین این وزیر استعداد فراوانی در فتن انگیزی داشت این آدم حسود از هدایایی که شاه به پزشک داده بود و همچنین نسبت به دانش و آگاهی او و صفات پسندیدهاش رشک میبرد و تصمیم گرفت پزشک را در نظر شاه خفیف سازد وزیر برای این منظور نزد شاه رفت و گفت میخواستم مطلب بسیار مهمی را به آگاهیتان برسانم که از لحاظ مصلحت مملکت و ملت بسیار مهم است. شاه پرسید این موضوع مهم چیست؟ وزیر پاسخ داد: پادشاهان نباید نسبت به کسی که هنوز وفاداری او را نیازمندند اعتماد و اطمینان کنند. منظورم پزشک دوبان است که شما نهایت محبت و سخاوت را به او کرده اید و او را نزدیک‌ترین فرد نسبت به خود معرفی کرده اید که مایه تعجب همه بزرگان شده. در حال که ما اطلاع نداریم شاید این پزش خیانتکاری باشد که برای کشتن شما به این سرزمین آمده باشد تا شما را از میان بردارد شاق گفت این سخنان را چه کسی به تو گفته است که تو جرأت میکنی به من بگویی متوجه باش که با چه کسی و در چه موضوعی سخن میگویی که به آسانی نمیتوانم آن را بپذیرم وزیر پاسخ داد پادشاها من به خوبی آگاه هم که چه میگویم؟ بنابراین، بیش از این به این شخص اطمینان ننمایید اگر پادشاه در خواب هستند جانثار وظیفه دارد شما را بیدار کنم و یک بار دیگر تکرار میکنم که این پزشک از قلب کشور یونان به این کشور نیامده که فقط بیماری شاه را درمان کند بلکه نقشه خطرناکی دارد که به بهانه درمان شاه آمده تا موضوعی را که به آن اشاره کردم به موقع به اجرا درآورد. پادشاه برای و گفت وزیر چنین باشد این مردی را که تو بدخواه و دشمن من میشماری یکی از بهترین و پرهیزکارترین کار ترین انسان های عالم است و هیچ کس را در این دنیا به اندازه او دوست نمیدارم. تا به خوبی آگاهی که این پزشکی و کار با دارویی که به من داد یا بهتر گفته باشم با معجزه که که داد بیماری مرا درمان کرد و چنان چه و قصد جان مرا کرده بود چرا زندگی مرا از این بیماری رهایی بخشید؟ و اگر گفته تو درست باشد؟ این پزشک باید مرا در همان حال بیماری به حال خود میگذاشت و دخالتی نمی کرد. من با آن بیماری وحشت انگیز موجود نیمی جانی بودم که رهایی از آن بیماری را غیر ممکن می دانستم و با این ترتیب انصاف نیست تو ذهن مرا نسبت به این پزشک خدمتگزار آلوده سازی. او شادیو زندگی مرا به من برگرداند و اندوه و هم را پایان بخشید. زندگی هم را مدیون او هستم. من برای این پزش در نظر گرفتم که ماهی هزار سکه طلا به او بپردازم و تا زمانی که زنده است این ماهیانه را دریافت کند و همچنین نیمی از دارایی و املاک و اموال من مال این مرد بزرگ باشد. هر مقدار به او سکه و دارایی بدهم در برابر کاری که او انجام داده از چیز خواهد بود. من فکر می کنم که دانش و کاردانی او مایه حسادت تو شده است ولی تصور نکن که سخنان تو مارا به او بدبین خواهد کرد و این تو هستی که بیجهت نسبت به این پزشک گرانمایه رشک می‌ورزی من هنوز گفته‌ی وزیر را به سلطان سندباد به یاد دارم که می‌خواست سلطان را از گسن شاهزاده باز دارد. سخن شاهزاده که به اینجا رسید گفت: چون صبح نزدیک است که قصی خود را در اینجا پایان دهم؟» دینارزاد گفت: «چقدر خوشحالم که پادشاه یونانی تبار مدی با اراده بوده و در برابر وسوسه‌های وزیر و های او درباره پزشک دوبان ایستادگی نشان داده است و حرف های او را نپذیرفته است. شاهرخ گفت: اگر... اگر در حال حاضر اراده قوی پادشاه را تحسین کنید متاسفم که باید بگویم در پایان قصه، یعنی فردا او را مورد سرزنش و نکوهش قرار خواهید داد. بدیهی است در صورتی که شهریار مهلت دهند، آن را برایتان تعریف می کنم شهریار که مایل بود سرانجام داستان را بداند، اجازه دارد که شهرزاد یک روز دیگر هم زنده بماند. شب 14. در شب چهاردهم درست ساعتی به صبح مانده، دینارزاد ماننده هر روز خواهر خود شهرزاد را از خواب بیدار کرد و گفت بقیه داستان را بگو. داستان تا آنجا گفتی که پادشاه یونانی عقیده داشت پزشک دوبار مرد بیگناه و دانشمندی خدمتگذار است و سخنان وزیر ازم را باور نکرد. شهرزاد به سخنان خود ادامه داد و گفت پادشاه یونانی درباره وزیر سلطان سندباد اشاره کرد که موجب کنجکاوی وزیر اعظم گردید و به این جهت از پادشاه پرسید وزیر از سلطان سندباد چه تقاضایی کرده بود پادشاه جواب داد که وزیر از سلطان سندباد خواسته بود تا فرمان خود را درباره کشتن شاهزاده نادیده انگارد و از کشتن او منصرف شود زیرا این فرمان بر اثر بدگویی‌های مادر زن شاهزاده صادر شده بود که ممکن بود بعداً سبب پشیمانی سلطان شود و در این زمینه این داستان را بیان کرد. داستان شوهر و توتی. در روزگار قدیم مردی زن بسیار زیبایی داشت که نسبت به او دلبستگی و عشق فراوان نشان میداد و حاضر نبود که لحظه او را تنها بگذارد. روزی برای انجام کار مهمی از منزل بیرون رفت و به مغازه رسید که در آنجا پرندگان گوناگون به فروش میرفت شوهر در میان آن همه پرنده یک طوطی انتخاب کرد که هم خوب تقلید حرفها را در می آورد و هم می توانست آنچه را که در نبودن شوهر در خانه میگذشت برای او بازگو کند. شوهر توطی را خرید و در قفس زیبایی جای داد و به خانه آورد و در اتاق گذاشت و از آن مواظبت کرد. اتفاقاً پس از چندی سفری برای او پیش آمد و به سفر رفت. هنگامی که شوهر از سفر به خانه برگشت توتی آنچه را که در نبودن او در خانه گذشته بود برای صاحبش تعریف کرد. شوهر از گفته های توتی ناراحت شد و همسرش را به خاطر آنها سرزنش را تنبیه کرد. زن خیال کرد بعضی از قلامان خبرچینی کرده و به او وفادار نبوده و شوهرش را با خبر کردند و بر این اساس زن از آنها پرسش کرد و همه قلامان سوگند یاد کردند که چیزی به شوهر او نگفتند و باید این کار را توتی کرده باشد. زنگ از دست توتی ناراضی بود و میخواست از او انتقامی بگیرد و بار دیگر که شوهرش به سفر رفت با خود تدبیری اندیشید و یکی از غلامان را فرمان داد تا در پشت قفس توتی آسیای دستی را به گردش درآورد و به غلام دیگر دستور داد از بالای قفس توتی آب را مانند قطرات باران به داخل قفس بریزد. به غلام سومی هم فرمان داد تا آینه ای را هنگام شب به اطراف بگرداند به طوری که انعکاس نور شم از هر طرف به سمت توتی بتابد غلامان تا پاسی از شب دستورات بانوی خود را اجرا کردند و با نهایت تردستی و دقت وظیفه خود را انجام دادند روز بعد وقتی شوهر از مسافرت برگشت از توتی پرسید در قیبت من چه گذشته است توتی بیخبر از همه جا گفت ارباب خوب من دیشب همه رعد و برق و باران بود و من نتوانستم از صدای طوفان و رد و برق و باران بخوابم. شوهر که میدانست شب گذشته رد و برق و بارانی در بین نبوده با خود گفت توطی که این بار حقیقت را نگفته پس دفعه گذشته هم حتما به او دروغ گفته است. بر و توطی را از قفس بیرون را و او را محکم بر زمین کوفت توطی هم آنم کشته شد. بعدها شوهر از همسایه شنید که توطی دروغ نگفته و همسر او برای گمراه کردن پرندگی بیگناه مرتکب به چنان حرکت ناروا و پستی شده است مرد از کشتن توتی سخت پشیمان بود و خود را سرزنش میکرد که چرا در قضاابت خود درباره پرندلی بگونا شتاب زگی کرده است شهرها در اینجا به سخن خود پایان داد زیرا صبح فرارسیده بود دینازاد گفت خواهر حکایاتی که برای ما میگویی به قدری هیجان انگیز است که هیچ چیزی به اندازه آن شنیدنی نیست شخصها پاسخ داد: اگر شهریهاثروت من اجازه فرمایند و من زنده بمانم حکایت بسیار دلپذیری میدانم که شما را بیشتر سرگرم خواهد کرد. شهریار که علاقه با جانش نسبت به شنیدن این حکایات کمتر از دینارزاد نبود، بدون آنکه دستور کشتنش را بدهد، به دنبال کارهای روزانه رفت. شب پانزدهم دینارزاد این شب هم مانند شب‌های گذشته شاهساد را صدا زد و از او کرد داستانی را شروع کرد. شاهسادم پاسخ داد: بسیار خوب، الان شروع می‌کنم. ولی در همین لحظه شهری ها که می ترسید داستان جدید را آغاز کند به سخن درآمد و گفت شهرساد بقیه داستان ماهیگی را بگو که هنوز به پایان نرسیده است شهرساد گفت اطاعت می شود و بقیه داستان را چنین دنبال کرد ماهیگیر به غور گفت وقتی پادشاه یونانی تبار داستان توتی را به پایان رسان به وزیر اعظم گفت تو به خاطر نفرتی که از پزشک دوبان در دل داری. می مرا وادار بکشن او کنی در حالی که این طبیب آگاه در تو بدی نکرده است. اما من به عنوان پادشاه باید متوجه همه چیز باشم و کاری انجام ندهم که بعداً پشیمانی به آورد و حکایت توتی و شوهر تکنار نشود. وزیر بدندی شوهی که به هر ترتیبی شده است به را از سر راه خود بردارد و او را نابود سازد به پادشاه گفت قضیه فرق می کند. مرگ توتی چیزی زیاد مهمی نیست و صاحب آن هم برای توتی ماتاموسوگواری نکرد اما در اینجا زندگی پادشاه در میان است که بسیار اهمیت دارد. و در چنین موردی سلطان به مسأله این زن و بدگمانی با یک شخص را که به او بدگمان است و ممکن است قصد جان شاه را کرده باشد به دست دشکین می‌برد. هنگامی که زندگی پادشاه در میان باشد، این نگهداشتن داشتن جان شاه از هر گزندی حکم می‌کند. که گونه بدبینی و زن را با واقعیت برابر دانست و به این ترتیب صلاح مملکت و بقای پادشاه در این است که در چنین مواقعی شبد مورد بدگمانی فرزند هم که بی‌گناه باشد فدا شود تا آنکه تهدیدی برای جان شاه به شمار بعد وزیر ادامه داد پادشاه در مورد پزشک دوبان من کمترین تردیدی ندارم که او میخواهد پادشاه را از میان بردارد. حسادت مرا وادای به گفتن این سخنان نمی‌کند. بلکه هواخواهی و علاقه من نسبت به زندگی و جان پادشاه مرا وادار به راهنمایی و خیرخواهی خواهی می نمایید. ثابت کرد که سخنان من از روی راستی و درستی نبوده مرا مانند وزیری که به کیفر رسید به جزا برسانید. در اینجا پادشاه می پرسد داستان وزیری که به کیفر رسید چه بوده و چه گناهی داشته بود. وزیر ازم پاسخ داد در صورتی که مایل باشید همکنون به عرض پادشاه خواهم رسانید. داستان وزیری که به کیفر رسید در روز کار قدیم پادشاهی سلطنت می کرد که پسری داشت و این پسر شکار را بهترین و شیرین تن سرگرمی می پادشاه که می دید پسرش دلبستگی بسیار به, به شکار دارد او را آزاد گذاشته بود که هر میل دارد به شکار برود اما پادشاه به وزیر خود سفارش کرده بود همیشه دنبال پسر به شکار برود و او را تنها نگذارد روزی از روزها که پسر به اتفاق وزیر به شکار رفته بود، شاهزاده آهویی را با اسب دنبال کرد و در حالی که در تعقیب آهو اس میتاق به قدری دور شد و از وزیر فاصله گرفت که خود را کاملاً تنها دید. و داندوخته اسب را نگه داشت و متوجه شد که خبری از وزیر نیست و راه را هم گم کرده است. او خیلی سر کرد تا از همان راهی که آمده بود بازگردد و وزیر را که به دنبال او در حرکت بوده است پیدا کند. شخصاده همینطور که با اسب راه می پیمود و جاده و راه معینی را در نظر نداشت ناگهان چشمش به بانوی زیبایی افتاد که در کنار جاده ایستاده و گریه می کند شخصاده که انتظار دیدن بانویی را در این مکان نداشت پرسید ای بانوی زیبا شما کیستید و چگونه یکی و تنها در این محل استادید آیا منتظر چیزی و یا کسی هستید بانو پاسخ داد من دختر پادشاه هندوستانم به قصد هواخوری با در این اطراف میگشتم. خواب مرادر را بود و از اسب زمین افتادم و نمیدانم اسبم به کجا رفته است. شاهزده که دلش به حال او سوخته بود از بانو خواهش کرد که پشت او روی اسب بنشیند. بانوی مضبور که منتظر چنین فرصتی بود روی اسب جذ و پشت سر شاهزاده خود را جای داد. همین که اسب شاهزاده در حرکت بود به خرابی نزدیک شد. بانوی زیبا از عصب زیر آمده به سوی خرابه رفت و شاهزاده هم بعد از او از از پایین جست و افصاد به دست به نزدیک بانو رفت ولی متوجه شد که بانوی زیبا سخنانی میگوید که از حیرت بجایی خوشک شد بانو میگفت بچه های من برای شما مردی آورده که جوان است که خیلی هم فر و چاق است صداهای دیگری هم بلافاصله شنیده میشد که میگفتند ما در این جوان کجاست ما خیلی میخواهیم همین الان او را بخوریم شاهزاده با شنیدن این سخنان مطمئن شد که با خطر بزرگی روبرو شده است و فهمید بانویی که خود را دختر پادشاه هندوستان معرفی کرده نوعی از پریزادهای مشهور است که این نو پریزاد وحشی و آدم آدمخوار است و در خرابه های دور دورافتاده زندگی می‌کند و هزاران تدبیر و حیله به کار میبرد تا راهگذری گزارش به آنجا افتد و او را به دام به خرابه کشانند و او را اوراتمی خود و فرزندانش قرار دهد شاهزاده که بسیار از این صحنه ترسیده بود بر اسب خود جست زد و با سرعت هرچه بیشتر از آن نقطه خلوت و دور افتاده فرار کرد پریزا که خود را به صورت شاهزاده خانومی درآورده بود وقتی دید چه کارش را از دست داده پشت راه شاهزاده نمایان شد و فریاد بر ای شاهزاده از چه می‌ترسی من برای راهنمایی تو آمده هستم شاهزاده جواب داد تو که هستی و دنبالی چه چیز میگردی من راه خود را گم کردم و میگردم تا راه خود را بیابم پریزاد پاسخ داد اگر راه خود را گم کرده ای خود را به خدا بسپار و ترس به خود راه مده خداوند تو را از این ناراحتی رهایی خواهد داد آنگاه شاهزاده سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و در دل گفت ای پروردگار مهربان خودم را به تو میسپارم مرا یاری کن در این هنگام شهرزاد گفت چون صبح نزدیک است مجبورم به سخنان خود پایان دهم دینارزاد گفت خواهرجان من طاقت سب کردن ندارم و میخواهم بقیه داستان را ادامه دهی شهرزاد گفت چنان تو شهریان اجازه دهد که من زنده باشم بقیه داستان را فرد و شهر خواهم داد شهریار گفت من حرفی ندارم من هم میل دارم پایان این داستان را بشنوم شب 16 دینارزاد که بسیار تشنین شنیدن ادامه داستان بود زودتر از وقت همیشه از خواب بیدار شد و از خواهرش خواهش کرد بقیه داستان دیروز را بگوید و گفت خواهر من نگران شاهزاده جوانم و میترسم که او تومه پریزاد کار به فرزندان او شده باشند شهریار هم همین نگرانی را از خود نشان داد شاهزاد گفت نگران نباشید حَمکن برایتان تعریف کنم. پس از آنکه پریزادی که خود را به صورت شاهزاده خومی درآورده بود به شاهزاده گفت که خودت تا به خدا بسپار شاهزاده در صداقت و محبت و راهنمایی او تردید داشت ولی مطمئن بود که باید به خدا پناه ببرد بنابراین برای بار دوم دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت ای پروردگار توانا پناه به تو میبرم مرا از دشمنان ایمن نگهدار و راه درست را به من بنما بعد از اینکه شاهزاده جوان این را گفت پریزاد وارد خرابه شد و شاهزاده هم سوار بر از با حالت تاخت از آنجا فرار کرد خوشبختانه شاهزاده راه را پیدا کرد و صحیح و سالم به قصر پادشاه بازگشت و شرط واقعی را برای پدر تعریف کرد که چگونه بر اثر بیتوجهی وزیر شاهزاده گرفتار چنان خطری شده بود شاه که از بیتوجهی وزیر بسیار ناراحت شده بود بلا فاصل دستور داد تا وزیر را به دار مجازات آویختند وزیر ازم پس از بیان این داستان اظهار داشت پادشاه ها چنانچه شما به این پزشک دوبان اطمینان کنید جان شما در خطر خواهد بود من کاملا مطمئنم که این پزشک جاسوسی است که دشمنان شما او را به اینجا فرستادهاند تا شما را از بین برند شما میفرمایید او بیماری شما را درمان کرده است ولی چه کسی می تواند شما را مطمئن سازد که بیماری شما واقعا شفا یافته است در ظاهر شفا یافته اید ولی از باطن کسی خبر ندارد کسی چه میداند داروهایی که او به شما خوراند است سرانجام به زیان شما نباشد پادشاه یونانی نه درک و فهم کافی برای پیبردن به واقعیت داشت و نه اراده نیرومند که در برابر سخنان فتن انگیز وزیر مقاومت نشان دهد گفته‌های وزیر یک حالت دو دلی در شاه پدید و گفت ای وزیر تو راست میگویی ممکن است این پزشک برای منظوری به این سرزمین آمده باشد و بخواهد مرا از میان بردارد او میتواند به آسانی با برانگیختن بوی داروها منظور را عملی سازد ما باید در این باره چار اندیشی کنیم هنگامی که وزیر احساس کرد حالتی را که میخواسته در پادشاه پدید آورده است رو به شاه کرد و گفت بهترین تدبیران است که مطمئنترین و سریع ترین راه را انتخاب کنید که جان سلطان در امان باشد و آن کشتن فزش دوبان است که همه خطرها را از شما دور خواهد ساخت شاه نظر وزیر را پسندید و دسته که یکی از معموران دنبال پزشک برود و او را به حضور بیاورد. معمور هم که از نیت شاه بیه بود به دنبال پزش دوبان رفت و او را نزد شاه آبرد. شاه رو به پزش دوبان کرد و گفت می دانی چرا تو را به اینجا احضار کرده پزشک پزش داد نخیر به فرمایی تا آگاه شوم. شاه گفت برای آنکه تو را بکشم و از دست تو خلاص شوم. هیچ کس جز خدا نمی توانست حیرت و شگفتی پزشک دوبان را در این لحظه درک کند از شدت حیرت در جای خود میخکوب شد و نمی‌تواند سخنان شاه را باور کند به هر حال با بیانی لرزان و با سختی بسیار پاسخ داد پادشاه ها چرا چنین قصدی درباره من دارید مگر من چه گناهی کردم من اعتقاد دارم که خدمتگذاری خود را نسبت به سلطان ثابت کردم شاه جواب داد کسانی که خیرخواه منند به من خبر دادند که تو به قصد کشتن من به اینجا آمده ای. ولی برای این که خیالم از سوی تو آسوده گردد ناچارم که تو را از میان بردارم در این هنگام شاه به دشکین که در آنجا ایستاده بود دستور داد که گردن پزشک را که میخواسته او را به قد برساند از تن جدا سازد وقتی که پزشک دستور مرگ خود را از دهان پادشاه شنید تحقیق که مهر و محبت شاه نسبت به او موجب حسادت و های دیگران شده است و آنها به دشمنی او برخواسته و کمر قتل او را بسته‌اند و پادشاه ناتوان هم تحت تأثیر گفتههای هم های قرار گرفته است. دوبان پشیمان شد که چرا بیماری شاه را درمان کرده است و با این ترتیب جان خود را به خطر انداخته ولی دیگر دیر شده بود و پشیمانی سودی نداشت. در این لحظه به پادشاه گفت آیا شما میخواهید پادشاه نیکی را به بدی بدهید؟ شاه که دیگر محوی از پدش دوبان در دلش باقی نمانده بود، به دشخین دستور داد او را گردن بزند. در اینجا پزشک چاره‌ای جز دعا به درگاه خداوند نداشت و التماسکنان گفت: پادشاها به من رحم کن، خداوند هم به تو رحم خواهد کرد. ماهیگیر که داستان را تا اینجا تعریف کرده بود و میخواست آن را در مورد قلدپا ببرد، رو به قول کرد و گفت: اینک آنچه بین پادشاه و پزشک گذشت بین نیز خواهد گذشت پادشاه به جای توجه به گریه و زاری پزش دوبان و دعای خیر او با تندی بان زد نه هرگز تو با همان سادگی و تردستی که مرا درمان کردی با همان تردستی هم مرا خواهی کشت و من برای حفظ جان خودم ناچارم که پیش دستی کنم و تو را بکشم آنگاه فرمان خود را برای کشتن پزش تکتار کرد و دشخیب هم و دست های پزشک دوبان را بست و به سراغ ساتور خود رفت. آنگاه تمام دربارهیان که در بارگاه شاه حضور داشتند دلشان به حال پزشک بی گناه سوخت و از پادشاه درخواست کردند از کشن او خودداری کند زیرا تهمتی که به پزشک زده درست نیست و او آدم خوب و خدمتگزار پادشاه است و جز نیکی و خدمت گناهی ندارد. پادشاه که آدم خودخواه و کم فهمی بود به درخواست هازنین اعتناعی نکرد و گفت دستور من باید اجرا گردد. درباریان هم که او را مصمم دیدند دیگر جرأت نکردن در این باره ادامه دهند. قزج دوبان که دوزانو روی زمین نشسته بود و چشمانش را با پارچهای بسته بودند و آماده مرگ بود یک بار دیگر خطاب به شاه گفت: اینک در تصمیم خود باقی هستید پس اجازه فرمایید تا من به خانه برگردم و درباره به خاک سپردن خود با همسر و فرزندان خود صحبت و خداحافظی کنم و پولی به فقرا بدهم و درباره کتابهای خود نیز وصیت کنم که آنها را به اشخاص علاقه مندی که می از آنها درست استفاده نمایند بسپارند و من مخصوصا میل دارم کتاب بسیار کرانگی را که در بین کتابهایم دارم به پادشاه تقدیم کنم تا آن را در خزانه پادشاه نگهداری کنند. پادشاه پرسید، این کتابی را که می چرا چرا این اندازه گرانبها است پزشک دوبان پاسخ داد برای آنکه درمان همه دردها و بیماریها در آن نوشته شده است و از همه مهم‌تر که وقتی شما سر از فکرم جدا سازید اگر در همون وقت پادشاه کتاب را باز کنند و صفحه ششم خط سوم را بخوانند سر بریده‌ی من هر پرسشی را پاسخ خواهد داد شاه که بسیار کنجکاو شده بود تا کتاب را به دست آورد کشتن پزشک دوبان را یک روز عقب انداخت تا او به خانه برود و کارهایی را که میخواهد انجام دهد. پزشک با همراهی نگهبانان به خانه رفت و همه کارهایی را که داشت به انجام رسانید و خبر در همه جا منتشر شد که سر بریده چگونه پاسخ به هر پرسشی خواهد داد و برای دیدن چنین کار شگفتآوری کلیه درباریان و اعیان و اشراف مملکت و نگهبانان همگی روز بعد در بارگاه پادشاه حضور یافتند. زش دوباره در حال که کتاب بزرگی در دست داشت به پای تخت پادشاه رسید و به شاه گفت این همان کتابی است که گفته بودم و آن را به شاه تقدین کرد و گفت اگر مایل باشید بعد از آنکه سرم از بدن جدا شد آن را رو روی تخته ای بگذارید و همین که روی تخته گذاشتید خون بند میآید. سپس کتاب را باز کنید و هر پرسشی دارید بپرسید و سر من به شما پاسخ می دهد. ولی پادشاه ها یک بار دیگر از شما میخواهم، که به بیگناهی من توجه کنید و خون مرا که آدم بیآزار و بیگناهی هستم بدون جهت نریزید پادشاه کتاب را گرفت و گفت بیهوده از من تقاضا نکن و برای این که ببینم سر بریدهی تو چگونه سخن میگوید باید سر از جدا سازم شاه سخن بگفت و به دشقین دستور کشتن پزش را داد دشقین با چنان سرعت و مهارتی گردن پزشک را با شمشیر زد به سر بریده روی تخت افتاد و خون فاصله بند آمد آنگاه در میان حیرت و شگفتی پادشاه و همه درباریان چشهای سر بریده باز شد و گفت لطفا کتاب را باز کنید و به همان ترتیب که گفتم آن صفحه به خصوص را بخوانید. شاه کتاب را باز کرد و چون صفحات آن به هم چسبیده بود شاه انگشت خود را با آب دهان تر کرد و برگی را ورق زد و چندین بار انگشت خود را به دهان زد تا بتواند زند. بلاخره ناچار شد شش بار این عمل را تکرار کند تا به صفحه ششم کتاب برسد چون صفحه ششم را آورد دید که در نوشته ای نمی بیند شاه به سر بریده پزشک گفت در این برک چیزی نوشته نشده است سر بریده پاسخ می دهد چند برگ دیگر را هم ورق بزنید شاه همچنان به کردن انگشت خود با آب دهان به ورق زدن برکایی کتاب ادامه داد تا آنکه زهر کشندهی که اوراق کتاب را به آن آغشده بودند به تدریج اثر خود را بخشید و ناگهان به سلطان حالت لرزه و قش داد و چشمان سیاهی رفت و بینایی خود را از دست داد و سرانجام از بالای تخت به روی زمین افتاد و همانجا جان به جان آفرین تسلیم کرد شهر که سخنانش به اینجا رسید به شهریان اشاره کرد که صبح نزدیک است و لب از گفتار فرو بست دینارزاد از شهرزاد خواهش کرد که دنباله داستان را ادامه بدهد زیرا او تا به انتظار را ندارد شهرزاد گفت چنانچه شهریار کشتن مرا به روز دیگر ما گول کند بقیه حکایت را شرقا هم داد شهریار هم که با شورا حیجان بسیار میل داشت ادامه داستان را بشنود گفت من فردا شب را هم صبر می کنم تا پایان داستان پادشاه یونانی و نتیجه قصه ماهیگیر و گول را بشنوم. شب ب دینارزاد بسیار علاقه داشت که بقیه داستان پادشاه یونانی را بشنود، اما او آن شب به زودی شبهایی گذشته از خواب بیدار نشد و هنگامی بیدار شد که تقریبا صبح بود. با وجود این شهرساد را بیدار کرد و از او خواهش کرد بقیه داستان پادشاه یونانی توار را شهر دهد و گفت با عجله بگو چون دیگر صبح شده است.